بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآل الطيبين الطاهرين المعصومين والأمس الضائمات عبر أعجارهم أجمعين اللهم أفعنا جميع المشهدين وارحمنا برحمتك يا رحمة الرحمن بحثی که از سر مرگون در اینجا بردن به مناسبت شرایط تنجیز علم اجمالی است فهمدن حمولی در علم اجمالی محصره که با اون شرایط علم اجمالی مناسب میشه امر سوم رو که در این جلسه متعدد شدن این از که تکلیف معلوم بر اجمال مکلفش معین باشه اما اگر تکلیف اجمال ما این باشه اینجا دیگه علم اجمالی منجز نیست سرش هم واضحه. ما از روز اول ارز کرد این تنجیز علم اجمالی در جایی که اون دایره شبه بسته باشه دایره علم بسته باشه اگر دایره باز شد اصطلاحا شبه وقتی بشیه اون دیگه تنجیز نداره احتمال در دایره باز تنجیز نداره چون هر مکلف مقایل به عمل خودش رفتی به دیگری نداره چون هر مکلف به حساب کار خودش چون رفتی به دیگری نداره لذا علم اجمالی ما بین مکلفین تنجیز نمیاره به اول زنده دائره بسته درست نمیکنه اون باید دائره ای باشه چون اگر احتمال در یک دائره باز باشه مثلا اگر این احتمالا باشه این احتمال منظر نیست اما احتمال در داره بسته یادی یا اونایی یا ما این توضیح رو آوردیم شرط تنجیز اجمالی یا به احتمال در اساس علم اجمالی سه شرط تنجیز احتمال این است که در داره بسته ای باشه مگر دیدیم که ممکن خیلی مهمه باشه ممکن در داره بعضی هم منجز این بحث دیگری مثلا یک در ده هزار ده احتمالا این کاسه توش مثلا طن باشه این بحث همیت محتمل و درجاتشون بحث دیگه از بحث ما به صورت طبیعی خادشی و نگه این مسئله محروف هست اگر دو نفر لباس مشترکی داشن در روز, در روز ما روز دیدن یک قطعه جنابن منی در او هست هر دو حکر به طهارتشون میکنن. کنن چون اگر من جنوب باشم به اون آقا محروف نیستون آقا جنوب باشه به من محروف میتونه. این دائره رو بسته نمی من برم تکلیف درسته نمی کنیم پس در علم اجمالی شرطش اینه که علم اجمالی به متعلقه این باشه نه به مکلطه اگر علم اجمالی به متعلقه این خوب این تنجیز نمیاره چرا که هر کسی تکلیف خودش رو داره مخصوصاً به اون ها که ما چرا را معرض کردیم علم اجمالی ناظره به تکلیفه این تسکیر بسید تکلیف در موضوع نیست خیلی توضیح هستن حالا اموزم شده که نه از بله یه بحث دیگری که اگر از مجموعه اینجا علم تسکیری پیدا بشه آیا اونجا چی؟ اونجا احتمال دادم که مثلا بعضی احتمال که دید در اونجا باطل باشید مثل که این دو نظر یکیش دیگری در ما جماعت بکنه و معمول میدونیم نماز به خودش باطله بخاطر که چون باشی یا امامش چون به نماز امامش باطل نماز من باطل میشه. جواهری. شرایط نسبت اوقات معمولاً دیواز امام که خب ما رو امام کارم. جواب مکل ارث کردم خدمتتون صادقانه این مطلب قراران گذش. اولا این علم تأثیری نداره و ثانیاً سا... مثال‌های دیگه من اون معنی از مثال‌ها دادن. گیاه خودشم رايشنا نصيحه خاصی نداره جواب در از تمام این مثال ها یک کلمه است و اون این چه اصل روی میمون اون معلوم وظیفه خودش داره امام وظیفه خودش داره اگر نماز امام به وظیفه خودش درست بود نماز معموم هم درست این چه یک نکته فکری هست این نکته اصولی بود به لحاظ هم هست من اینجا توضیح واجبی نکته که عرضه کنم لکیه آه اون اینه که اگر نماز نمازش حسر خودش درست بود اما در واقع کامل نبود اما قدرت اون هی مقدار بود ایمان بنامشون اینه که معمون اگر نماز, نماز نمیتون بوده خدا بکنه مثلا یه کسی تازه از عربی یاد گرفته حروف یاد گرسته درست نمیتونه حروف عذاب کنه بیش از این هم نمیتونه قداعتش ناقص هست اما بیش از هم نمیتونه خب نمازش من خود شد روسته اینجا بست نیست بیشت آیا چیزی میتونه به این طبعات ناغذ خدا بکنه سوال و یه فرد دیگه من فکر توی فکره میشه این شخص و عجیب بکنه بر نماز استیجاری بگه این نمازش من خود شد همین که برایش شدی درسته من عجیبش بکنم یا پشتر از نماز توی بحث فرد گفتن نمیشه هرجیم کرد میگه سر شما کسی که قرارتش ناقصه گفتن درسته برای خودش مزیه که اما دلیل نداریم که این معموم به عمل ناقص اکتفا بکنه خودش میتونه به عمل ناقص اکتفا بکنه خودش میتونه به قراعت ناقص اکتفا بکنه چون تمکن نداره خود شخص چون همه کن نداری میتونه به عمل ناقص اختفاق کنه اما آیا معمول میتونه به امام ناقص اختضاق کنه میانید این دیگه ضدیر نداره اختضاق معمول به عمل روشن شد دیدید اون شخص نمازش برای خودش درسته اما من میتونم ناقص بگیرم عمل ناقص رو بگیرم تو هر جهب هم حالا یکی چیز نمیتونه اعمال حجی به حجی ضروری اکتفاق برای خودش درسته اما من میتونم نایف بگیرم میگن نه خب ممکنه از در انجام شما هم بگیم چطور شما میگه معموم نماز بخونه خب میده نماز ما بشه خودش به نماز ما بشه چطور افضا بکنه جواب این مطلب چه که با یک تعمال مختصه بس روشن میشه و اون چیزی که اون فرد در جایی است که معموم بیاد نماز امام رو فی نفسه لحاظ بکنه، بکنه. یعنی نعودی شخصی نفسه برای خودش موجی، برای من برائت ناقص، برای من. اونجا آمده فی نفسه مشکل پیدا کرده، فی نفسه. یعنی این قراعت فی نفسه ها مشکل داره. اما در ما نواشی فی... فی نفسه ها مشکل نداره. نماز امام فی نفسی مون معنی یا من یا امام. خودش اضافه می روشن شد نکته کار اگر خودش اضافه کرد مشکل درست میشه. اگر خودش اضافه نکرد مشکل درست میشه. شه نماز امام که برای خود اما درسته اون که می توان از تو ها را برای خودش جایی بکنه یک قصد بکنه روشن که نکته یه خندی بعد مسائلی که خیلی زرافت داره این در کارهای عمده اصولی از قدیم و حتی از زمان صحابه وقتی مثل مطرح شد مراد این ذرافت ها بوده نه اون مطالب بازه اونجایی که عمل امام فی نفسه برای امام درسته و همون عمل فی نفسه برای مهمون درسته مثل قراحت ناقض نمیتونه و درسته این دفعه نکنیم آزید. این اختلاف لحجه مختلا بعد از این که غیر عرب ها والده اصلاف شدن خب این بود این اطلاف که از خوابین معروب شده در تفسیر مخصوصا آرائه و قال اطلا و قال اطلا ایشون هندیوله اصلیده بشن مثلا سبحان الله سبحان الله به همی کن آین هندیوله همی کن خب یا بلاب بکن شون بود بجایشی فیلم می کن از خدایمه الله این اختصاص به ده خب نماز رو برای خودش درسته اون نمازچی داره میخونه برای خودش شیل رو به جای رو بهشون تلفظ نداره یا هی هوشی رو نمیتونه درست به جه همین جهه حرازیه اون برای خودش درسته اما معمول برای معمول فینقشه درست نیست این قرائت درست نیست نه منو استفاضه کرده قرائت الکتروشنگه اما شما چی میگید میگید نماز امام فینقشه درست به به من مشکل با تکلیف من چون یا من چنده یا اون چنده نه اینکه نماز امام مشکل داره بی نفسه حتی برای من برای من هم بی نفست مشکل نداره. من, من مکملت رو به او زمینه می کنم دوتا مکلف می کنی او هم مشکل دارد میشه اون زمینه ای که می مشکل درست میشه. البته حس این, این فرو یا یکی را اجرا که یکی دیگر اجرا برای مسجد کن مسجد چوبی نبود لکه همه باطل فرو ازیم و هم مایه کردم که از این فرو رام آی خویی آغاز اگر مایه باشه، خب جایی ابهام دشوارش پذیرفته ندارند. ابهام ندارند. آن مراجعه کردم بازده انشالله. لکن مم ما آی خوییم. من نفهمیدم فکرش اینه که هم همین حالی رو بود تو ذهن محاسب از سال مراجعه نکریم ما رو آخری خبر با چیزی علمای طالور نه قبل بحث علمای طالور برای ما آخری رو چند تا فرض قبل از ایمانی قبل از در ما جای طبیعی بحث همین بود که ما اون نایمی آوردیم یه تبیح اینجا هست که اون آن خود اونجا مراجعه و مطابقت میشه یعنی ضابطش میتونه در هر این بشه که بگیره میتونه... اگر اگر حال خیلی اول نه همون که راست خودش مزی نائب نمیده نه این نشه ناویده. الان توزیع نمیشه خود ها خودش نایب بگیره آمیگه. برای دیگه خودشی کارو برای دیگر اگر صاحب کار که اجازه بده که اجاره به بکشه دیگه بده اشکال نداره اما در صاحب کار اجازه از اون مستند به اصطلاح از اون به اصطلاح به از اون اجازه بگیره اجازه بگیره که به دیگه اشکال اما این مسئله در هر زیاد اصلاح می‌شد. سابقا زیاد بود که همه دلار تاویف و کرد. دلار شماها شدی ازش نیست. مثلا سه چهل سال کار زمان مصرفمون تا وقتیون از اعیار ها غالباً یه لیست می از تمام اون کارها کارونا ها آزاد بودن و همین است. نفر ازش ردیاره. میره پشت مقام ابریکیی برای برای روانی دیگه الحمدلله فقها هم نگفتن واجب نماز ناقصه خودش بخون هم همون برزمیسی همون ناقصه رو بخون حالا کسی خواست احتیاط که هیچ نیرواتی احتیاج بکنه اناره میگه که قرار درست شده نه وظیفه در اونجایی که خودش انجام بده اما من نمیتونم رو بگیرم وظیفه خودش هست من نمیتونم ناقص بگم وظیفه خودش درسته من نمیتونم کوئی سر نماز بکنم خوب دقت بکنید دو تا بحثه. اون امام فی نفسه قرائتش خودش موجبیه من نمیتونم بکنم اون میتونه اکتفا بکنه من نمیتونم اختلاف بکنم بحث شما ما امام لا علم لا, لا. ب... ده... بالنسبه الى الامام مو نفسه الى نفسه ما له حديث لنسب إلى ذلك. لكن المهم بعد الجوع جزء المهم صلاته. صحيح يعلم هذا النقطة يعلم صلاة الإمام باطل لكن لما يقيس نفسه. مو صلاة الإمام في ناسها. صحيح. أه. هاي نقطة القرف بين الناس. في الراحي ناس صلاة صحيح. لأنه ما يحسب نفسه ما يقيس بنفسه ما يدقق في نفسه في البيت. المشكلة والله. مطلب چهارمی رو که مرحوم نائینی فرموندن املا یک رونه علم بالخصوصیه ده فرحک به حیث و کان اجمال متعلق مما یخصدی تبدلالحکم واقعا البته ما این رو به یک شرط دیگری گفتیم محوم نائنی این به عنوان یک قاعده کلی قرار داده که بعد از فروع رو بگیر کار خوبیه ببینید یک نکته بسیار لطیف در مباحث ماهی در فقه خیلی موثر فوق العاده موثر با این که بعضی از روایاتی که مثلا از اهل بیت وارد شده موردی ما از اون موردی خصوصیات موردیش الغاء کنیم به یک بحثی در بیاریم این خیلی لطیف است این روش یک بحث اصولی من چند دفعه ما روایات زیاد داریم انماهی و اصول اهل درسوها کازرن اصلا ما موععه ليديو قوسون رسول الله باب ينفذهم یعنی من كل باب الحباب يعني ينفذهم من كل باب از بابا نشی که امیرو موضوع سر كده با اون چند در زمان میشه یه مثالی من که من 1 میلیون مسئله رو میشام نتیجه گیری کنم هزار در هزار یک میلیون رو من نتیجه گیری کنم من همیشه ارز کردم این کتاب جواهر که چلوش جلیزه کل شساسه هزار تر حالا اون یک میزون شما حسابه کنگو نیشه بزرگی کتاب فقیه ما میاده شساسه هزاره تا یک میلیون. این اصل مطلب هست یک مثل یکم که این مشهوره انما علینا القاق الاصول و علیکم و تفریل ارز این روایه باید که که این مشهوره دیم صحیح از می‌نوونن که در بحث مکاسب تشخیص داده میشه در همین اخیراث البته جامعه بازنسی در کتاب تراائر هست این روایت فقط در اونجا آمده و اون جامعه بازنسی وجه روشی نداره ولی اشتباهی گفتن روایت سنگین نه اشتباهی از کلام مثلا درست رو گفت مبانی خاص خودشه این اما این مثلیه مسئله درسیه حالا این چی بوده اصل مطلب ها ناینی درسی دقت بکنید از موردی رفته میخواهد یک استنتاج حکم کلی و اصولی بکنه اون مورد این روایت ایست از سکونی ده. که احتمالا برمیگرده به کتاب قضای یا المعبونی سالالله هست و این من چند دفعه از سبم که اصحاب ما در برخودشون با کتاب سکونی حالات مختلفی دارم ناسه اینکه که از اجرایب این که این روایت را فعلا فقا قصه این است و روایت داریم مثا این روایت سکوني رو مرحوم کلني نیورده صدوق و مرهوم شیخ طوسی اوردن انهم خیلی عجیبه عجیب واقعا چیز عجیب عجیبوغریب با اینکه کتاب در اختیار کلني بوده و دیگه روایت رو ایشون نیوردن قدس الله اساد این روایت اینه یک نفر پیش یک کسي دو دینار عمانت دزاشته یک کسی دیگرم یک دینار یک دینارش دزدی میشه اینجا باید چیکار بکني درد میکنه طبق این رو امام اما میتنیم اون دو دیناری که باقونده با اون صاحب دیناره با اون دو دیناری، یک دینار میدی اون یکی رو نصف میکنه نصفش به اون که دو دینار داشت نصفش با این که یک دینار اینجا مشکل مشت... مشت... درست کرده که شاوات دار البته خب ازیم گفتت این حق خلاف قاعده است این نفس خلاف قاعده است در میگنیم به قواهد شرکت یعنی اول پولی که بود 3 دینار بود 3 قسمت شد بگیم سه دینار یکیش مال یکی به مال یکی دو سوم مال یکی درست شد حالا 2 دینار باقی مونده 2 دینار رو تقسیم می‌کنیم خود دقت 1 سوم یک دینار مال یکی یک سوم یک دینار دو سوم مال یکی 2/3 دو, دو دینار اون دو دیناری باقی مونده این معنای معلوم داریم روایت موردی بود میخواد ممنونهی بیازش رو علم اجمالی و قاربی رو سو باره باشنی اصل کار چی بود؟ چون الان مشکل کجاست وقتی یک دینار نصف میکنیم خب ما میدونیم صاحبه یک دینار نصف دینار میدیم بین کم نصف دینار ما میدونیم این یک دینار یا مال این یا مال اون این نصف کنه خب علم اجمالی به خلاص داریم یک نصفش چون دخل او клومشون یک نسل دینار نهورده نه که دیگر نسلی نهورده دوست هم کهو برده یک دینار برده دو تا نصف دینار که نهورده پس به لخل این یک دینار یا مال اینه یا مال اونه یا مال اینه یا مال اونه این که نسلشو به این داری نسلشو به اون بری علم اجموعه که یک جا شرعه حالا مشکل کجا؟ مشکل اینه که اگر یک دیگری آمد این نصف دینار هم از این گرفت اون مسئله از اون گرفت هر دو پیش ایشون ایش ایش جمع شد آیین چی میگن میگن که علم تفسیری متولد شد چون آقای کیلوتون استری میگه قاعدتا نفسش به انتقال نشه به این دلیل عمره روشن شد چی؟ این همون اشکال معروف شیخ انصاری که در بعض از موارد از علم اجمالی علم تفسیری متولد میشه اکثر مثالاش جاوقی قبل از بحث اون جایی جا چجور جواب دادیم این راه جواب چی دو تا جواب رو سفید جواب سوم هم اده هستن چه زعیفه این خور اده ای هستن نگم به قره برگرده یعنی یک دینار بذیم به صاحب دینار برای اون یک دینار چون یک بیناره مالیه یا مالیونه دیگه خدا کرده؟ این یک دینار نصفش نکنی تصیلی سن اینجا قرهه بزنیم یا بین بدیم یا قوم بدیم پس مجموع آراه پقیه در منداره چند تا چند سه تا یکی منصوص یک دیوار نرس بکنیم بین بدیم قوم بدیم یکی رو مثل برموزانی حساب قاعده بزنن شرکت بشه تسلیفش بکنیم دو دینار رو سه رسمت بکنیم یکی هم رستن برگستن در روایت و قره. یک دینار رو بریم به دیناره اون یک دینار هم قرعه یا به نصف. این بریم یا به اون بریم نکنیم چون بلاخترین بریم یک دیناره هماره اون آقاست این که مسلم به علم اون عمل بکنیم این یک دینار هم بیناه همه هست اون از اینجا به قرعه حالا به اصل انان چون ذهن من نسبت نیمیشونم بدم به فقیه مثلا فقیه خیلي سرشناس بزرگوار معروف مثل محقق داشته باشیم که به اطلاقات قرعه عمل کرده باشه نداره یک بحث معروف در قرآن. من چون همیشه س میکنم در خلال بحثها بعضی نکاتی که در جای دیه هم هست برای تمییر فکر و برای خاطر شما بر اصول ولذا امثال صاحب جواهر جواهر زیاد داره میگه قرعه رو جای عمل میکنیم که اجماعی باشه. میگه به اطلاقات قرعه اصحاب عمل نکرد ان خد قاعد مهم اما داریم ما تو با مثلا نظم از سدم تابوس علی الله توی فروع نادره‌ای گفته قرء عمل که خیلی عجیبه ظاهرا چه ذهن من میزنم فقط اشاره مثلا من لاغر من نشستم مثلا در قله اشتباهی تو بیا روز قبل خودت اسم یه بزنم یه جای اشتباه تو اون مسئله معروف که زن خونش زیاد میشه از ده روز بیشتر میشه. دو ماه سبا خون می‌بینه میگه قرء بذنه مثلا این روز مثلا خودم روز اون 8 روز نرزو در مسئله در هم زم قرآه اگر این نقل ها درست باشه این خیلی رعی شازی زده خیلی رعی شازی این یه قادف کلی در ذهن باشه این میتون میبینید این فوقها اینقدر با سعه به مراجعه نکردن جوابش رو ساهر جواهر اینطور میده ما جایی به قرآه رو کنیم که اجماع باشه این جواب صاحب جواهر روشن شد ما در بحث قرئه جوابش ما جون دیگه ندیم ما اصلا گفتیم اطلاقی نداریم این اشتباه شده اطلاقات القرئه کل امر مجهول از یا قدس الله نفسه ترجمه هست که ما اون هم نداره دیگران هم متفق نشدند من از شاگردان مرواد بجادی رضوان رسالری زیاد شنیدم این مسئله من سابقاً تو الاله احکام و مسائل و مواضع عرفیون از, آز بوجود اشتباه رو بعد تفسیر تفسیر شد اما اینو زیاد چیم بازاره باشه ایشون میفهمون که الگار اصول کل امر مدبور لید از الگار اصول کل امر مشکله یعنی هر میکنه اگر عنوان بود الگار اصول کل امر مشکل مشکل یعنی یک مثلی که در واقعش معلوم نیست خب دقیق بکنیم مثل خونسای مشکل مثلا چون معلوم نیست در واقع زن یا مرگ چون واقعش معلوم نیست اما اگر عنوان بود القرآن به کل امر مجهور یعنی واقع دار تو نمیدونی اینی که اصطابه بسیار لطیفه است اما توی اون روایت قرآن به ثابت مید اگر روایت قرآن ثابت بود این نقطه بسیار ضریفیه این نقطه را هم چون من حتی بیش آقای کویم این نکته را نگم این مرمومات بجنونده از قول آزی ها را هم مپرده به نظرم توی سوال آزی ایشان مید علم نینچ هم ما داره، مشتبه کی م... شد با مجهول یکیه. نکته فنی اوشاید شد خاص بنابراین اگر گفتیم القرعه کل امر مشکل ما نحوی رو چون مانعنگی مشکل نیست. یه دینار اما گفتون القرعه اصل به کل امر مجهول. گویاش که کل ذرافت کار رو. اگر گفتتون که کل ل مجهول مناحنافی میگیره. چون منحنفی این یک بالاخره واقع داره یا ما من نمیدونم اگر چیزی در واقع نداشت اونجا مش... مشکل گفت میشه. اگر چیزی واقع داشت، من نمیدونم اونجا مجهول گفته میشه. پس در مانحنفی در این ودری با خدا آیات اینجا مجبول مشکل نیست. شون اون یک دیناریه قطعا مالک داره من نمیدونم لذا اگر بود قرعه کل همه مشکل اینجا نمی‌شه به قرعه رجوع کرد چون اینجا مشکل نیست اینجا مجبوله این یک ذرافته یک شکایتیه اینجا ممکنه اگر در ده صدام ده سال خالصا دل بشی کوشش کنی این یک ذرافته بسیار لطیفی که خیلی آسال یعنی اینگاهی براتون برایش شبه بشه خیلی درگیرش ممکنه به قرعه مراجعه کنی در قوانین مدنی روسیه تو به قرعه مراجعه اینقدر چطور ما چند قرعه مراجعه این یا نه روایت در مشکل اینه لباسه الان ما مشکل با چند اورج دیگه هم مشکل اون مشکل بمجوری میذارم مشکل که مشکل وز خ معنداره مقد اننداه ان نخصص خاصه عنی موارد انتاب بود اصل قاهز ها میشدم. من رووازار که مثلا برای خون ها خوبه بهقول مراجعه کنیم چون مشکل اونجا اون مجبور نیست خون ها خوب دقت کردیم خونس های مشکل یع خوهایی که زوابط مرز و زمین پیدا نگره اونجا بگید به خوبه چون مشکل. اما در ما مشکل نیست مجهوله با قولیشان مشتبهه من نمی‌ذارم این مال کدون بگیم من نمیدونم یک چی واقع معلومی چی دیگه دیگه ایشون ما ها مرموم آزی ها بسیار خوب داره تقریب بعض جا خیلی دقت میکنه که از غورت خواهیش نیشه اما باز جا خیلی مطاقل لطیفی داره می از همون خارج های خوارج های خوارج های خوارج های خوارج های نه نه معلوم. نه ما تشریف نتونیم بودیم یه دفعه واقع مشکله یه نه واقع معلوم من نمی دونم برگردیم به حرف مرحوم آینائی پس بنابراین یک دفعه این تا اینجا یک جا جای قصه آخر ما دا دائما در ذهن وارتون باشه ما یه بحث رو از لحاظ اصولی مطرح میکنیم یک بحث رو به لحاظ فقهی تو همین مسئله بحث میشه تو احداث خرج میشه نقش فقهی اینطوریه هر جا بحث موردی بود میشه فقهی هر جا بحث ساری و جاری بود میشه اصولی به قلقه این نقطه چی؟ مثلا تو همین بحث بده ای که دو دینار داشته این خیلی از نقطه تنزیز علم ایجمالی و تولاد ازم تفصیل از علم ایجمالی یک نقطه دیگری هم داره اینجا یک نقطه دیگری هم داره اون نقطه فکریه اون نقطه فکریه هم در داره می کنم دیگه مجید می کنم اون نقطه فکری اینه که آیا شرکت اینجا پیدا نیش یا نمیشه؟ شرکت در اصطلاح فقها دو جوره این به طور کلی چون معاملات چه در تو اقتصاد خیلی نقشو ایجادون مگر که در فقه ما نقششه الان تو اقتصاد فعلی نقشه عجیبی پیدا کرده شرکت به طور کلی دو جوری یک شرکت عقدی و قراردادی یک شرکت قهری اصطلاحاً اینطوره شرکت قراردادی ما قرارداد می‌بندید مثلا شما خونری می‌زنید شما مننسی شما مثلا پول می‌گیرید می این که قرارداد باشه که درو می‌گوار البته قراردادایی که ما در شریعت داریم محدودیت داریم اونی که الان در عرف نیا در اساس به اسم شرکت خیلی قرارداد و عقدی خارج از دایره شرعی به حساب خارج جلوه میدونه که محدود در دایره شرعی پس بنابراین یک شرکت قرارداد داریم که اینجا ما نیست یک شرکت قهری داری. داریم که خب شرکت قهری میشه شما در فی گندم داریم در بازار سند داره تصرف ما محدود شده یکی دوما و هم میز خوب شرکت قهری در کلو گندان شما بوده 20 کلو گندان برادر بوده میشه کیلو. این شرکت سلسه سلسش مال شما تو سلسش مال این اینه افتلاحاتش شرکت فرقی ما در خیلق داریم دروست هم هم نقطه بردار بزنید نقطه, بردر. نقطه بردر. در بردار سهوریات ولیزا میگم فرقیه مثلا آب با آب دو متر آب داشتیم و اون آب سه متر آب داشت شد این شرکت آب با سرکه بازم شرکته بایگه دو ماهیه دن چون تمیز نمی داره به اون موجود یک مقدار شما این و خراب شده سرکه با شراب به مایع آب با شیر شیر با شیر شرکته آب با ab آب شرکته سوال آب با شیر شما 10 کلو آب داشتیم آغایت 20 کیلو شیر داشتیم و اجتماعا محروف شده آیا شرکت پیدا میشه میگه نه یکی آب به شیره اونم میگه شرکته نه شرکت که پیدا میشه این آب و شیر موجود یک تا مشوال این آواسته اونبولونوقا ولی یکی شیره دقیق این بحثا فنیه ما باج جوابین بحثا نشی پس گندم با گندم حالا گندم با تو این آقا درگیر گندم باش آقا با شیرو جو گندم قابل کمی لازم هم بیا این آقا مثلا یک دوره رساله داشت و آقا چه دوره داشت مثلا این آقا مثلا فرض کن یک دوره کتاب و داشت آقا دو دوره کتاب مثلا مخنی داشت اینا با هم مخلوط شدن خب این شرکت نمیشه خالص رساله یک مشکل کار این بحث صبری که مشکل کار این است که توی درهم و دینار چیه اینا روشن است تو درهم و دینار چیه؟ سوالی که بود امام امامی بود است دو دینار و یک دینار چیش یک نفر گذاشتن یکیش دوزی شده آیا درهم دو تا دینار با هم دیگه مثل آبه؟ که این شرکت تحرید رو سو کنن؟ یا بگن دینار یک طرف این یک و اون یک دینار اون یک دینار, دینار, دینار. شرکت ما هم پیگانه لذ دقتت چ میخوا نتیکششی میشه که اینجا تسلیس نمیشه. پس یه بحث میشه یه بحث صغری درمان اشتباه نکنید بحث صقری یاش یه بحث کبری درمان هننافی داره مع مع دایمینتححلری ایشان در این قضیه اینه اولا از ایشان شرکت میکنه آهای خوبی شرکت نمیدونه یه بحثی درک کردیم آب با آب شرکت گندم با گندم شرکت خوبی خربه کنیم دینار با دینار چی من پر ست هزارتان داشتم پیش اگه آها داشتم یه آهای دیگم سی ست هزارتان پیش داشت اینو مخلوط شد این با این پول شرکت پیدا میشه یا نه پول من جه خودش پولون آها شرکت خودش شرکت نمیشه پول از هم سر مطلب رو شد مرمونه و حصولی چیدیه که انلا یکونه و به باید اخرا یعطا بر بی تأثیر علم اجمالی انلا یکونه موضوع من الموضوعات یعطا بر علم بالخصوصیه پی ترتبه الاحکام حکمه سبا امکان من الاحکام تکلیفیه او من الاحکام الوردیه و علازاله یکتنی حصول و شرکته فی الانوال اندالخل فی انهو تب تل ملکیه تول خصوصیه. من او نایرین اینو بگه بگه در اینجا وقتی که دو دینار با یک دینار مخلوط شد شما میگی وقتی یک دینار مثلا سلس کردی خب علم اجمالی دارید به بطران چون سلس دره همچه مالکی نبود دو مال یک و ایک سلس نبود اینو بگه میگه بعد درست این علم اجمال اما این علم اجمالی منتجز نیست این علم اجمالی منتجز نیست چرا؟ چون در باب شرکت الکمرادیشون چه اسم داره ایشون یه روزه من گفتم شرکت حالا کلمه حصول مثلا و ملکیت و خصوصیه تحصیل مالی مالج مختلف من خوب دقت بکنید ایشون میگه اگر گندم با گندم شرکته اد دراهم به دراهم درهم با درهم شرکته و این خالف بغزان خیلی حصول شرکتی بله، ایشون تحبیل بشه یه قدر قهرین نفرم در لکه این چون کلمه حصول رو گفتن شما بودیه حصول روزی شرکت قهرین شرکت درمان احنافی عقدینی تا اشتباه نشاه شرکت درمان احنافی قهریه دو نفر پیشه به آیه در هم گذاشن یه نفر یه در هم لذبیشون که چون ایشون اصلا در درسالشو معیم فرمزن خوب دقت بکنید من من ارزمان خدمت آیون همیشه مسائق رو سبب تنگیم بکنیم و این خالف به بعضان فی حسول شرکه و سبوتل اشائه به خلق درانه این بخت فقریه نقطه و اصولیش اینه میگه چرا علم اجمالی در جا منجز نیست اگر علم اجمالی منجز باشه باشه چی کار تو یه درهم که بدیه اون یه درهم دیگه فقط قرعه باشه چون یه درهم ولی که قاعدون ها اما اون یه درهم نه که نه شده این با اون با علم اجمالی نمی‌سازه ایشون میگه در اینجینی علم اجمالی تاثیر نداره چرا چون علم اجمالی جوری موثری که خصوصیت داخل باشه علم خصوصیت در شرکت یه علم و خصوصیت داخل تا شرکت اومد یه علم اجمالیشون میشه ندید من علم اجمالی دارم اون علم اجمالی در مال منحازه مال مفرده مالی که افراد شده دیگه تا شرکت آمد، اون ملکیت خصوصیت ملکیت اون از بینیه در شرکت یه مدت میشه لذایشون میفرموند بلاتیم ندر اموان حسول و شرکت بیا ایزن در دراهه این بس فرحیه استاد بایشون مخالفه ایشون میگن در دراهه شرکت میشه بکنه. چون ما میدونیم این یک درهم مالی این آقا از ما ساب روز درهم اون یکی هم یا مالی یا مالی این دیگه شرکت بده داره بشید چرای شرکت داره بشید ولی ازای مرحوم نایینه از این راجعه بوده چون میگه شرکت آمد علم اجمالی ما اثر در نتیجه تصویص بکنید اون هم رو دو درهم رو دبینید دو سومش بشید یکی بدین یک درهم شید یکی بدید مرحوم استاد می فرمان نه شرکت حاصل نمیشه وقت در مسئله نسته مثل آرکویی سابران شاید سکونی شمایی دستونه اخیلان برای سکون قبول می فرمدن توصیل میکنند را سکونی قبول شده و سر حصول شرکت خلف الانوال از کردن بهشون هی حصول شرکت خلف الانوال اصطلاحی نمیشه. و این طرح به حسول شرکت قهریه در مقابل شرکت عقلیه یه شرکت عقلی داری یه شرکت قهری داری اینجا چون تردیانه خودتون خبتون بسیار اضافه بفرمن هو امن ملکیه و ماکان امن امور اعتباریه علا قرفیه چون ایشون ملکیت رو هم اعتباری اعتباریم دارن ایشان اگر خدا من صحبی خود ایشون که بحث استثحاب دارن ما همچی جایدیشان متعرض ب ما ان ها داریم دیدیم میگه حییدی دیدیم میگه اعتباری داریم, از مغولی مغولی داریم. آخری ملکی که مثل از مغوله مقوی دیدیم ال اخر این چش نیست که فوق این حواイレ مثل یه بحث سبحان الله و اینجا چون از امور اعتباری کان اجمال خصوصیه ریس ایشون میگه اگر در موردی شد که اون خصوصیت و حدش موجب زوالش شد دیگه علم الهی مولا تاثیر نمیکنه چون دیگه درداشه میشو در انوار اینطوره این ده کیلو گندم مال شماست خوب دقت بکنید تا کی حدش باشه این ده حدی شما با 20 کیلو گندم مخلوط شد خوب دقت کنید دیگه اون حدش از بین رفت حالا که حدش از بین رفت چیز دیگری پیدا شد چیز شرکت چه فرقی les autres filles این 3 کیلو دیگه شما ده کیلو مال شما این خوب دقت کنید یک 3 مال شما هست. جس بود بعد میگه یعنی اینجا اصلا کاری کرد که این اثر کرد دقت شما اول مالک 10 کیلو بودین حالا نمیگه مالک 10 کیلو مالک 1/3 در نتیجه اگر مال طرف شد از این 3 کیلوش ایش کیلو بود دیگه 10 کیلو مال منه. الان ماشون شما چقدر دویی داره نمیشه یک بیشتر میکنیم. می, می توانم خبر دارم. از آن ناین رواده قبول نمیکنه. رواده ناین یه حصول شرکت میشه دو سوم یک ذره یک سرو. دو ذره یک سرو. آی کوی شرکت قبول نمیکنه. مردین این شرکت قبول میکنه در ذرهایی. و چون شرکت قبول میکنه؟ میگه این کلمه قاعده است روا... اما روایت قبول نمیکنه چون اگه روایت قبول کنه باید بریم نیم درهن اما تلمه قاعده حدود نیم درهن به اصطلاح اون زمان سه دانک بود نه در اینجور حدود چهار دانه رو خرده ای، چار دانک دانک دانک دوانق به اصطلاح لفظ عربی فارسی که عربی شده حدود چهار و میشه نیم باشه سه تا میشه این چهار و ای میشه یعنی به عبارت اخراق دو درهم میشه دوازده تا دوازده دانم نا چهار تاستید یک تاونش میشه چهار اگر روایت رو بگیریم سه دانه باشه بشدیم اگر قاعده نانیان رو بگیریم چهار دانه باشه بشدیم روشن شد سه ده مطلب نانیان تفسیر چیه میگه در این جور نیست. چرا؟ چونه اگر اینم آمد تأثیر گذاشت در این انقلاب محلوی یعنی شما علم داشتید یه خصوصیت بود این برداشتش شما خطوزیل عوض شد دیگه اونجا علم ایتوانیت محسن شما مالک ده کیلو بودیم خوب دقیق تا شرکت آمدیگه مالک ده کیو نیستید عنوان عوض شد شما مالکی چی هستید؟ سلسی بیس کلو گمه رو بوده حالا این گردو 2 بزرگ شد. 6 کیلو مونده از 3 کیلو 6 کیلو مونده شما این 6 کیلو من با اینکه 10 می‌میاد تمام دارن از این 6 کیلو 2 کیلو بهش آبین این شرکت قهریه پس ایشون میگه اگه اونشانشون تصاحمی اگر اهم این اینطوری شد که با علم به خودشه به مال عارض کنه رو دیگه علم اونجا منجز نیست شما لازم این 2 کیلو که میگیری که تو ده, ده کیلو بود. یقین یعنی نداری که این تو بوده این علم این علم مالی اون آقا مثلا 4 کیلو می‌گیره یک کیلو هر دانه جمع میکنه این 4 کیلو بدونن قطعا باطل دیگه چون مثلا این 6 کیلو نفر کیلو مالی نفر بود کیلو میگه در اینجا علم آمد تاثیر در خصوصیت داشت یعنی اینکه مال تو ده کیلو بود به خاطر علم بود تا علم دیگه کیلو نیست اگر این طور بود دیگه علم اجمالی معتبر نیست تنجیز نداره علم اجمالی چون عوض می‌کنه این مطلبی که ایشون فرموده شبیه اون نقطه‌ایه که ما گفتیم اگر راستون باشه گفتیم در تنجیز علم اجمالی شرط است که علم به نحو موضوعی باشه نه یک خصوصیت آورده ما کلی آوردی گفتی اگر علم این به نحو موضوعی باشه علم اجمالی منجزه مثلا اگه گفت معلوم البولیه یا جمال یا من یا این بولی یا اون کل واحده معلوم البولیه همی لذا ما از اول بحثیت تحکیل کردیم علم اجمالی جایی مندده که علم طریقی باشه نه موضوعی حالا ناینی یک طرز علم موضوعی رو بوده اگر علم آمد خصوصیت رو عبد کرد علم اجمالی در اون موارد تنزیز نکنه پس جواب مرمونه روشن شد در اون مسئله و تحلیل اصولی پس ایشون هم بحث فشی کردن آیا در ذراهیم شرکت حاصل میشه ایشون میذارن بره آیا آزا در اینجا به نصف برگردیم نه به قاعده برگردیم یک و مال صاحب درهم و دو و مال صاحب درهم و دو مال صاحب درهم, درهم به نصف تا مراجعه نمی کنیم علم اهمانی پیدا نفه یکیسی بره این دو بده؟ در... یک ثرم و دوم سوم دیگه علم تفصیل داره بابا این علم تفصیل مؤثره چون علم ایونیه جو تاکید نمی‌کنه اصلا علم ایونیه تاکید زای وندی چون اون خصوصیت مخصوصه خب اگه جواب دوم دو جواب دوم دو شد جواب سومه که بگیم اصلا از چون ذمره اعتباری اینجا کاندیدای که تا هم از طرف شارع نه از طرف عالم اصلا اصول علم اجماع در آخر رتبه است <تصفيق> میگه هسته اینجا علم اینجایی تنزیز ندارد علم تأثیر هایی متعدده نمیشه، این ندارد حالا من این فقط یک نصف عرض بکنم جواب دیگه اینه که ما قبول میکنیم رواست قبول میکنیم و اونجا هم اینجا میگیم اصلا میگیم با حکم شاره با تنبیه شاره اصلا موضوع عرض میشه یعنی طبق قاعده من مالک نستدره هم نیستم اون آقا مالک شاره نستدره ه اصل تمنکیت امرو اعتباریش به یاد شعره شعره شارع آمانی در اینجا اعتبار کرده که من اعتبار میکنم تو که مالکی یک هم بودی حالا مالکی نصد درهم من اعتبار کردم ولذا علم ترسیلی به خلاف قیداد نمیشه این راه میگه یعنی کسانی که روایت قبول کردن از این راهوارد سودن که اینجا اصلا لا لارده ایسا خلاف این راه دیگه از این جواب بش